حالا رکن سوم جمله به فل بستگی داره که فعل ممکنه مفعول داشته باشه که اصطلاح بهش میگیم فل متعدیه و اگر نیاز به مفعول نداشته باشه بهش میگن فیل لازم اما مثال به این مثال دقت بکنید من می روم. حسین استراحت می کند ملیکا راه می رود. این سطح جمله از دو رکن یا دو قسمت تشکیل شدن که عبارتا از فائل و فعل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 ما تا قسمت سادهنده فعل رو یک جمله رو مورد بررسی قرار دادیم فائل بعدش فعل و بعدش مفعول حالا این جملات رو دقت بکنید مجتبی نان خرید سوال بپرسید چه چیز را چه کس را میشه جوابش نان احمد نامه را فکس میکند فکس میکند چه چیز را نامه را مادرم شام پخت پخت چه چیز را شام را مریم خواهرش نسیم را به بیمارستان می‌رساند. سوال می‌پرسیم. مریم چه کسی را به بیمارستان می‌رساند؟ نسیم را. در تمام موارد شما متوجه شدید که اگر جواب وجود داشته باشه یعنی که فعلش متعدیه. خب. پس باید دقت بکنید که وقتی میخوایید جملات انگلیسی رو بسازید با فایل شروع کنید. وقتی فایل رو میگید